هوی دانش برنامه از انجمن استادان و, و پژوهشگران ایدانی همایون گرامی شاه داغراجمند با درود فراوان امیدوارم که هفته خوبی رو پشت در گذاشتید و آماده روزهای آینده اید. خوشحالم با آگاه شما برسنم که در برنامه امروز خانم دکتر سپیده شاکری، پزشک و پژوهشگر دانشگرده دانشگر پزشکی یوسیلی، پیرانمون سرطانهای پوست و راه های پیشگیری از آن برامان خواهد گفت. پس از ایشان آیدین عزیز ما رو به ایران خواهد برد و خوانم به دکتر فرزانه رحیمی استاد آسیب شناسی دانشگاه بهشتی و مرکز پشکی دی که پیرامون تازه های آموزشی پژوهشی و بالینی ذریران برای خواهم گفت در تماس خ یک دکتر سپید شاکری پس از آموزشی پزشکی خودشون در برنامه های پژوهشی آموزشی بالینی ارزنده به کمک هم میهنان ماشتافتته و در زمین های گوناگون در شمال ایران یاری رساندند گزارش های ارزنده به چاپ رساندن، در کمیته های بالینی، آموزشی، پژوهشی، دست به دست همکاران در هموار کردن رساندن کمک های پیزشگی و بهتاشتی کوشش و فراوان نمودند و دانشگاه ها و سازمان های پیزشگی و به آنها عرج نهادند. در بخش نخست، در برنامه بروز دکتر سپیده شاکری برای ما پیرامون سرطان پوست و راههای پیشگیری از آن گفت و در ساعت شش و بیس طقیقه تلفون ها و شما می توانید از راه شماره 323-512-7264 باز خواهیم گفت این شماره رو میتونید توانید های خودتون رو پیش بیارید خواهم دکتر شاکری با سپاس از پذیرفتن خواهش ما از سرطان پوست برای ما بگویید و راه های پیش ممنون از معرفی خوبتون جناب دویتر نواب اول سلام عرض می خدمت همه شنوندگان خوب رادیو ایران و خوشحال هستم که در خدمتتون هستم امر مطلب رو که امروز قرار در مورد صحبت بکنم در واقع سرطان های پوست هست البته به واسطه اهمیتی که در چندین سال اخیر به دلیل افزایش ریت ابتلای که پیدا کرده و به این دلیل که اگه سرطان های پوست رو ما به موقع تشخیص بدیم به سادگی و به طور کامل قابل درمان هست در واقع مطلب رو به این موضوع اختصاص دادم که یه مقدار علائم هشدار دهنده این بیماری رو باهاش آشنا بشیم و بتونیم در واقع زودتر به تشخیص و درمانش برسیم انواع سرطان های پوست در واقع چندین نوع سرطان پوست ما داریم و اینکه حالا چه افرادی بهش مبتلا میشن چه کار بکنیم که احتمال ابتلا رو پایین بیاریم و در واقع راه های پیشگیری به چه شکل هست و اگر مبتلا شدیم چه اتفاقی خواهد افتاد که این در واقع برای ما مهم هستن یه مقدار ابتدای مرور میکنم روی ساختار و آناتومی پوست و در این حال اینکه عملکردی پوست نرمال به چه شکل است تا ما بعد بتونیم عمل کرده یک پوست غیر نرمال رو در واقع تشخیص بدیم و در واقع تلاش بکنیم که به پزشک مراجعه بکنیم که احیانا مبتلا به سرطان نشیم پوست بدن ما یکی از وسیع ترین عضوهای بدن است و مساحت حدود 1 متر یک متر و 700 سانتی‌متر مربع داره که البته با این وسعت زیادش تنها به اندازه‌ی به طور متوسط 6 میلی‌متر ضخامت داره و با این ضخامت کم از سه لایه اصلی تشکیل شده که در واقع لایه سطحی اون لایه اپیدرم هست و اولین سطح دفاعی بدن هستش که در واقع نقش خاص خودشو داره معمولا نقش مکانیکی و حفاظتی داره حفاظت رطوبت بدن، نقش آیق حرارتی داره مانه از ورود میکرو ها میشه و همچنین مسئول رنگ و شادابی پوست فرد هست لایه دوم در واقع لایه زیرین پوست هست به اسم درم و ترین لایه پوست و مهمترین بخش پوست رو تشکیل میده که حاوی مورک های خونی، اروق لنفاوی، رشده های عصبی و زمائم پوست مثل فولیکول مو، قدرد چربی و قدرد عرق هستش همچنین رشته های کولاجن و فیرپال الستین که از جنس پروتئین هستن و نقش الاستیسیته و کیشانی پوست رو به عهده دارن در این قسمت قرار گرفته و آخرین لایه پوست لایه هایپودرم است که به عنوان لایه‌ای هست که حاوی سلول‌های چربی است و نقش حمایتی رو در برابر ضربات مکانیکی داره حالا فارق از اینکه در واقع پوست ما از چند لایه تشکیل شده و به چه شکل است نقش کلی پوست در واقع یک سد دفاعی هست برای بدن در برابر ورود میکروارگانیسم ها و در این حال یه نقش مهمی در سیستم ایمنی بدن ایفا میکنه در کنار اینها خب پوست میتونه برای تولید ویتامین ها مثل ویتامین دی تولید برخی از هورمون ها و آنزیم ها دخیل باشه و تنظیم در واقع آب بدن و تنظیم حرارت بدن و در نهایت به یک عضو لامسه عمل میکنه اما وقتی که در واقع سلول های پوست رفتار سرطانی پیدا می چه اتفاقی می افته؟ سلول های پوست در حالت عادی در واقع رشد خودشون رو دارن به شکل منظم به سل های جدید تقسیم می شن و این ترنور پوستی در طول شبانه روز با سرعت زیاد و به مقدار زیاد اتفاق می افته گاهی آقاد روند از حالت منظم خودش خارج میشه به طوری که سلول های پوست ناسالم شروع به فعالیت میکنن و سلول های پیر در زمانی که باید از بین برن نمیمیرن و سلول های جدید بیش از حد مورد نیاز به وجود میان و این روند یه روند تزایدی هست که باعث ایجاد بافته ای میشه که ما در واقع با اون تومور میگیم و توموری که به این شکل ایجاد میشه حالا میتونه رفتار خوشخیم داشته باشه در واقع بناین باشه یا اینکه ملیگنت باشه بدخیم باشه و حالا یه سری اختلافهایی بین تومور خوش‌خیم و بدخیم هست مثلا تومورهای خوش‌خیم به ندرت خطرناک هستند در واقع تهدیدی برای زندگی محسوب نمیشن و اگر به موقع و در زمان مناسب تشخیص داده بشن به راحتی قابل برداشتن و زمانی هم که برداشته میشن دوباره رشد نمی‌کنن و فعال نمیشن و اینکه قابلیت دست‌اندازی به بافت‌های اطراف رو ندارن اما تومورهای بدخیم در واقع خطرناک به سرعت رشد میکنن و حتی میتونن در واقع باعث مرگ فرد بشن و اینکه به واسطه رشد و اینویسیو بودنشون میتونن دستاندازی پیدا کنن به بافتای اطراف متاستاز بدن و امکان داره که حتی بعد از اینکه برداشته میشن دوباره عود بکنن سرطان های پوست رو ما به طور کلی به دون نوع اصلی تقسیم بندی میکنیم بر اساس سلولی که رفتار سرطانی نشون میده که در واقع بدون نوع ملانوما و نان ملانوما در واقع تقسیم میشن ملانوما بدخیمترین و جدیترین نوع سرطان پوست هست و در واقع سلول های ملانوسیت هستش که رفتار سرطانی نشون میدن سلول های ملانوسیت هم سلول هایی هستن که حاوی رنگدانه یا پیگمان هستند در پوست در واقع رنگ پوست و رنگ زمائم پوست مثل در واقع موی افراد ناشی از وجود رنگدانه های ملانوسیتی هستش و چرا این سرطان اهمیت داره؟ با اینکه ریت بسیار بسیار کمی داره یعنی کمتر از یک درصد سرطانه پوستی رو به خودش اختصاص میده ولی بسیار کشنده هست، سرعت رشد بالایی داره و قدرت توجمی بسیار بسیار بالایی داره به طوری که آماری که امریکن کنسر سوساییتی در سال 2014 اعلام کرده افراد مبتلا به این نو سرطان 76000 و تقریبا 100 نفر بودند که در واقع از بین این افراد شاید حدود 10000 نفر فوت کردند به دلیل ابتلا و موقعی هم به خاطر تهاجمی بودن این نو سرطان امیدی به زندگیشون نمیتونیم داشته باشیم از ملانوسیت های پوست در واقع وقتی ها رفتار بزقین پیدا می ظاهر زایه هم تغییر می کنه و معمولا تومورهایی هایی رو که ما می بینیم به خاطر اون پیگمان های رنگی به رنگ قهوه یا سیاه هستن و معمولا هم در مناطقی ایجاد می شن که تحت اکسپوژر با آفتاب هست ولی در موارد معدودی هم دیده شده که رنگ اون زایه می تونه به رنگ صورتی قرمز و یا حتی بنفر بشه. علت این که افراد به ملانوم مبتلا میشن ناشناخته است اما عوامل متعددی از جمله عوامل ژنتیک، میزان برخورد با اشیای ماوره بنفش و تماس‌های محیطی در ایجاد این بیماری دخیل هستند. نشانه هایی داریم به عنوان وارنینگ ساين یا نشانه های هشدار دهنده برای اینکه در واقع ما زودتر بتونیم متوجه بشیم یک خال و یا یک ضایعه داره به سمت بدخیمی پیش میره. البته بهتر از من یه اشاره بکنم به خصوصیات خال نرمال تا بتونیم در واقع خال و یا اب ابنرمال رو به راحتی افتراق بدیم خال معمولی معمولا یه زایه خوشخیم هست و تعداد بسیار کمی از خالهای نرمال بدخیم میشن معمولا خال معمولی یک ظاهر در واقع صاف داره میتونه برجسته باشه یا مسطح باشه ولی حتی خال برجسته هم سطح خال مسطح هست و چین و شکنج نداره و در حالت طبیعی حاشیه خال هم به شکل منظم هست ممکنه شکل گیرد یا بیزی داشته باشه و از نظر سایز معمولا خالهای زیر 6 میلیمت رو ما به عنوان خالهای خوشقیم و در واقع نرمال به حساب میاریم و حالت حالت هایی که میتونن هشار دهنده باشن در واقع وارنینگ ساین هستند زمانی هستش که خال حالت نورمال هست ولی به مرور زمان و در تایم کم در زمان کم شروع به رشد میکنه و اندازش بزرگتر از حد عادی میشه. تغییر رنگ در خال ایجاد میشه، قوام اون ممکنه سفت بشه و حتی متورم میشه و بافت‌های اطراف رو هم درگیر بکنه این تورمش. ممکنه که خال دچار خونریزی بشه و یا اینکه یه سری احساسات غیرمعمول برای فرد ایجاد کنه، مثل ایجاد سوزش، ایجاد نامنس، حالت بی و در واقع این نشون میده که تغییر و تحولاتی در بافت زیر اون خال وضای ام داره اتفاق میافته. خانم دکتور با اجزاء بریم به پیام ها برگردیم بسیار سپس بس. گشنته هان کاترز پیتزا توالا رفتی؟ نه. نه پیتزای سوئدی نخوردی؟ پیتزای سوئدی چیه؟ پیتزای سعودی دونر کباب ترکیه یا همون کباب یونانی گیروس که با پنیر و سس مخصوص درست میکنن، انگشتای پاتم میخوری؟ کباب رو پیتزا؟ دمشکن کاترز یه پیتزای دیگه هم داره که با استیک فلمینیوم و سس فرانسوی برنیز درست میشه. پس بگو انقلاب کردن تو پیتزا، کی آیدیا رو داده؟ دو تا برادر هنرمند معروف به نام علیک کامران کارتیو او پس معلوم شدین هم هنر و ابتکار از کجا اومده تازه پیتزای ایرونیشون که با همون سوسیس و کالباس ایرونی درست میشه که گوگا پس محکم بشین کاترز Pizza با دلیوری همبرگرهای تازه و پیتزاهای سوئدی و ایرانی پخت شده در تنور سنگی کاترز روبروی تارزان و بیکری 818 757, 14 35 هنوز از همبرگرش نگفتم یوا با اوتراچ با اوتچبی جنگنده، و چیل دکتر الکساندر اسکندری وکیل تصادفات و سرماقات بدنی با بیش از 19 سال تجربه و دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت من دکتر الکساندر اسکندری از شما دعوت می کنم به نظرات چندی از موکلین دفتر حقوقی الای ترال لایرز کالیفرنیا ما اسم اسکندری شهاب هستم به دلیل کیس صدمات شاید بدنی که چندین وکی نتونسته بودن کاری برای منجام بدن به آقای دکتر الکساندری مراجعه کردم ایشون با صداقت و درایت کامل در تمام مراحل پرونده با من همراه بودن و تونستان به نحو بسیار شایسته از حقوق قانونی من دفاع کنم دفاع در برگی هیلز پسدینا و اورنج کانتی 310 492 و 1855 سرامه هر کینیو بیستمین مراسم ایام روشاشانا و کیپور را 24 تا 26 سپتامبر و 3 و 4 اکتبر در محل جدید بریست و ناتالی در 8657 غرب پیکوف برگزار می کند با خزان خوشصدا دیوید برشالام و سخنرانی ربای جوان اسحاق سخایی و سرب کدوش اسپانسر برنامه هنری بلیسا منوچهری به یاد شادروان سعید منوچهری 310 785 0440 ششصدو هفده AM دانش. برنامه از آنجامن و و پژوهشگران ایرانی. شاندکار رجبان همیانگیرو می. پای گفتاره خانم دکتر سپید شاکری پزشک و پژوهشگر داشت پزشکی پیزشکی هستیم که برای ما پیرامون سرطان پوست و راه پیشگیری از اون دارن میگن پوست رو برامون تشریح کردن و چند جور سرطان پوستی که وجود داره و گفتن که با اینکه که یک ها یک درصد انواع مختلف تشکیل میده ولی خطرناکتره و فرق خالهای خوشخیم بیناین رو گفتن با اونایی که میتونه سرطانی بشه یا باشه و ادامه میدن صحابتشون رو سپاس گذارم میکنم از نشانه های وارنینگ ساین اولین نشانه این بود که خال نرمال تبدیل بشه به خال غیر نرمال،, نرمال و رفتارهای سرطانی از خودش نشون بده حالا ممکنه که اصلا یک زایه از ابتدا خال در واقع آنورمال باشه که با من دیسپلاستیک نووز یا ایتیپیکال مول معروف هست که باز هم همون خصوصیات رو داشته باشه یعنی از ابتدا هاشیه نامنظم داشته باشه شکل نامتقارن داشته باشه اندازه بزرگ و یا اینکه در طول زمان کم رشد بسیار زیادی داشته باشه و بنابراین این خال و یا این زایه در واقع پتانسیل بدخیم شدن رو از همون ابتدا داره از خودش نشون میده علامت دیگه این هست، افرادی هستن که خالهای نرمال دارن یعنی ظاهر منظم دارن سایز مناسب دارن ولی تعداد خال بیش از پنجاه عدد در بدنشون در صورتشون و در, واقع در اندام ها هست این افراد هم باید حتما در واقع موازب باشن و به درماتولوژیست مراجعه بکنن چرا که تعداد این خالها که به مقدار زیاد هست میتونن رفتارهای بدخیم و سرطانی رو در آینده نشون بدن اینها در واقع وارنیساین در رابطه با خال هست. همیشه یک زایعه بطخیم خودش رو به عنوان خال نشون نمیده. ممکنه یک زایعه پوستی باشه به شکل شاخی شدن پوست که به عنوان اکتینیک کراتوزیز معروف است. یعنی زایعات پوستی کوچک هستند که نمای پوست ریزی رو در بدن ایجاد می‌کنند. معمولاً در اثر تماس طولانی مدت با نور خورشید ایجاد میشن و بنابراین چون عاملشون نور خورشید هست در مناطق تحت اکسپوژر با آفتاب هستند مثل در سر و صورت گردن و این زاییات در ظاهر به شکل پوستریزی هستن بدخیم ممکنه نباشند ولی معمولا در افراد بالای 40 سال دیده میشن و چون پتانسیل بدخیمی رو دارن باید حتما فالو بشن زای دیگه التهاب شاخی لب هست و معمولا در لب پایین افراد دیده میشه افرادی که سیگاری هستند بیشتر مستعد هستند زای به شکلی یک التهاب پوست دهنده در در واقع در گوشه لب هست گاهی اوقات با شیلوزیز ممکن اشتباه بشه که در سر کمبود ویتامین بی ایجاد میشه ولی این زایه ممکنه زایه پتخین باشه و گاهی اوقات افراد شکایت میکنن از اینکه در واقعی التحابی گوشه لبشون دارن که خوب نمیشه مثل زخمی که ترمیم نمیشه و یا هی مجدد تکرار میشه این التحاب شاخشی های کمی داره ولی باز هم مورد توجه هست گاهی اوقات اونقدر تغییرات ایجاد میشه در ناحیه لب که حتی مرز بین لب و پوست لب از بین میره و اون بافت متورم میشه و این افراد حالا من در ادامه توضیح میدم که سرطان های سرطان اسیسی یا سنگ فرشیداری مستعد این رو سرطان خواهند بود زایه دیگه که برای ما مهم هست شاخک پوستیه، یک برامدگی مخروطی شکله، در واقع یک پایه قرمز رنگ از ابتدا تشکیل میشه و به مرور زمان رشد میکنه و یک زایه مخروطی شکل رو ایجاد میکنه که این هم از نظر ما اهمیت داره و این زایه میتونه به بدقیمیه در واقع اسیسی یا سلول سنگفرشی تبدیل بشه به طور کلی هر کدوم از این وارنینگ ساین ها اگر دیده میشه ما در واقع تاکید میکنین که حتما حتما حتما و من در واقع سه بار تکرار میکنم به این دلیل که نگلکت نشه و افراد حتما باز به درماتولوژیست مراجعه بکنن نمونه برداری بشه چرا که اگر یک زائده در همین مرحله اولیه تشخیص داده بشه کاملا قابل درمان هست و مزایه میشه برداشت بشه و در واقع ما از یک مشکلی که میتونه باعث مرگ فرد بشه داریم به جایی میرسیم که میتونیم زندگیش رو سیو بکنیم. دومین دسته از ها در واقع به اسم نان ملانوم‌ها هستند یعنی سلول‌هایی هستند که از جنس ملانوم نیستند و به دو دسته سلول های بازال که بی سی سی و سلول‌های سنگفرش یا اس کاموس سل اس سی تقسیم‌بندی میشن این زایات هم باز هم در نواحی اکسپوژر قرار دارن در ناحیه سر و صورت ها و بازوها و مناطقی که تحت اکسپوژر خورشید هستند سرطان سلول ای یا بی سی سی به عنوان سرطان خوشخیم به حساب میاد و شایع ترین و قابل درمان ترین نوع سرطان پوست هست و علت این که ما میگیم خوشخیم چون بسیار بشه به کندی پیش رفت میکنم قابلیت دست‌اندازی به بافت‌های اطراف رو نداره و از نظر ظاهر معمولاً زایاتی هستند که سفید رنگ و مروارد شکل هستند زایی گرد گای با یک برامدگی در واقع به شکل پر از چربی اشتباه میشه و گای قدم حاوی عروق کوچک هست معمولاً باز در ناحیه صورت و گردن دیده میشه ولی ممکنه در اندام ها هم دیده بشه و حتی ما زایات بی سی سی داریم که علاوه بر اینکه در واقع خصوصیات من گفتم را دارند به رنگ های دیگه دیده میشن صورتی یا قهوه‌ای. بنابراین هر کدوم از این ضاد دیده بشه باید توسط پزشک معاینه بشه. نوع دیگه از سرطان نانوملانوما سرطان سلول سنگفرشی یا اس‌سی است که در واقع این نوع سرطان به شکل های نرم قرمز رنگ و پوستدار ظاهر میشه بدخیم هست این زا به طوری که میتونه از خودش خونریزی داشته باشه ترشح داشته باشه و حتی میتونه به شکل یک زخمی ایجاد بشه که ترمیم نمیشه خیلی از افراد شاکی هستند که در ناحیه بینی در ناحیه پیشانی در ناحیه گوش و حتی لب پایین زخم هایی دارن که این ترمیم نمیشه و یا مدت ها هست که این زخم وجود داره بنابراین اگر زود تشخیص داده بشه احتمال درمان هست ولی اگر در زمان تشخیص دیر باشه بسته به میزان پیشرفت درمان ما ممکنه پاسخگو باشه و ممکنه هم نباشه و متاسفانه اینو سرطان قابلیت دستاندازی به قدرت لنفاوی و سایر نواحی بدن رو داره و در قسمت دست معمولا سرطان های سی سی تر هست در صورت سرطان های خوشقیم دی سی سی تر هست و در افرادی که سیگاری هستند در ناحیه لب باز سرطان سی سی بیشتر اتفاق می افته مطلب بعدی هست که چه کسانی مستعد هستند که به سرطان مبتلا بشن؟ افرادی که عوامل در واقع جنتیکی خوب خیلی اهمیت داره. افرادی که سابقه خانوادگی مثبت دارن، افرادی که میزان مواجهشون با اشعه ماورا و نفشه خورشید بسیار زیاد هست، افرادی که با عوامل دیگهایی مثل در واقع برخورد با اشعه یووی به شکل مصنوعی استفاده از دستگاه سولاریوم سابقه پرتودرمانی درمانی به هر دلیلی مثلا سابقه پرتو درمانی های فوتوتراپی پووا که در واقع اشعه پسورالن هستش در بیماران بیتلایگو یا سوریازیز استفاده میشه افرادی که به واسطه شغلشون در تماس با ارسنیک هستن افرادی که سفید پوست هستن و همچنین افرادی که همیشه التحاب های مزمن در پوستشون دیده میشه اگزما و یا زخمای پوستی دارن و برخی هم از افراد هستن که دارای فوتو هستن و در واقع پوستشون نسبت به آفتاب تحریک پذیره و همچنین افرادی که تعداد زیادی خالهای بزرگ با اشکال نامنظم در بدنشون دارن مساعد ابتلا به اینو کانسرا هستن و حتما باید دقت بیشتری داشته باشن روزا بهترین راه پیشگیری از سرطان پوست محافظت هست از در برابر اشعه خورشید و میتونیم بگیم اشعه خورشید برای انسان مفید نیست مگر برای تولید ویتامین دی بنابراین محافظت از پوست در برابر اشعه خورشید یکی از مهمترین عامل هایی هستش که در این واقع ساده هست ولی بسیار کارساز برای پیشگیری از ابتلا به سرطان پوست و حالا مواردی رو که من اشاره می کنم از اثرات خورشید در واقع اثرات زیانبار بار محسوب میشه. کمترین اثری که در اثر اکسپوژر با آفتاب برای ما اتفاق میفته لک پوستی هست یعنی پوست در وهله اول تیره میشه ولی به مرور زمان ایجاد لک و پیس میشه یعنی قسمت های, های پیگمانده میشن پر رنگ قسمت های هایپوپیگمان میشن کم رنگ و ایجاد لک و پیست میکنه و در برخی از افراد در اثر برخورد با آفتاب دچار اسکین فوتوسنستیویتی میشن حساسیت پوست نسبت به نور خورشید یه مقدار جلوتر که بریم فرد دچار اریتم یا قرمزی پوست میشه و این اریتمی اگه ادامه پیدا بکنه میتونه حالت سوختگی در پوست ایجاد بشه افرادی که معمولا آفتاب میگیرن پوستشون مستعد ایجینگ میشه و زودتر پیر میشه پوست کم آب میشه ایجاد چونه چین و چلوک بسیار در واقع در اون افراد سرعت میگیره در خودش و در نهایت میتونه باعث بدخیمی های پوستی از نوع SCC, سی, سی بی سی, سی و ملانومایی باشه که توضیح دادی من یه مختصر درابطه با ترکیب عشای خورشید صحبت میکنم خب دکتور بخواییم بذاریمش بعد از اوگهی ها ممنون میشم دکتور سارگون لازاروف مختره اولین سیستم کاشت دندان فوری همین جومه ساعت دو تا سه بعد از ظهر در برنامه عشقا و لبخندها 818-380-957 det er en snelle Sharunak, insurance company neri tsacha fortneri okten harjur millioner tsaweli pohatut sumen mia Ekspeditioneret, du mårbne kan barnasvatskneret vojvo, kører skaber vats. Hvad? Vedt pasta bankkammeratid. Dine, jeg er skaberumme. Der er ansatte bankov. Inne inne inne. Inne som inne. جون خیلی خوشیب شدی چیکار کردی ؟ رفتم پیش دکتر امیر ازدان متخصص جراحی کاشت و پیوندمون که با جدی ترین تکنیک ها و پیشرفته ترین دستگاه ها عمل پیونده موی من رو چنان طبیعی انجام داده که هیچکس ن جای عمله رو می بیننه و نه از ختمب متوجه میشه. در این ظه جون اعتماد بنفسم هم کلی بالا رفته. دکتر ازدان رو از کجا شناخیم؟ از طریق شویددااکتر در کانال CBS که دکتر اززان پزشک انتخابی این شو معرفی شده. 949 528 64 اوسیهtransplant.com. کی آی از یونیورسال سیتی کالیفرنیا اینجا کی آی آر ان 670 ای ام سی ولی لس آنجلس مرزهای دانش برنامی از همجمن استادان و پژوهشگران ایران دوستان عزیز، خاانز دکتر پیت شاکری پزشک و پژشگر پزشکی یCLه برامون پیرامون سرطان های پوست راه های پیشگریش گفتن و اون رو ادامه میدن و بعد شما میتونید مثلا ده دقیقه دیگه ه دقیقه دیگه سی۲۳ 5۱ 7۲ ۴ پس بگیم 20 دقیقه به 8 به 7، بیشت دقیقه به هفت شما سی سدی بیست و سه پوم سد دوازه هفته دوشست چار بگیرید و پرستشاتون رو پیش بیارید خواهم دکتر درابطه با ترکیب اشایی خورشید که در واقع اشایی که به زمین میرسه از سه تیف کلی اشایی انفرارد، ویزیبل لایت و یولترا تشکیل شده یعنی در واقع مادون قرمز، نور مرئی و ماوره بنفش و بیشترین زیان رو برای ما اشایی ماوره بنفش داره و این اشایی ماوره بنفش خودش به سه تیف یوویه ای، یوویه بی و یوویه سی در واقع تقسیم بندی میشه که خطرناکترین نوع یو سی هست و خوشبختانه اصلا به سطح زمین نمی رسه و از طریق لایه اوزون جذب میشه بنابراین اون چیزی که ما در واقع تاکید داریم و پروتکشن رو در رابطه با اشعه ماوراء بنفش تاکید میکنیم در رابطه با یو ای و یو بی هستش یه توضیح مختصر میدم که حالا یووی ای رو کدوم قسمت رو پوست اثر میذاره و ما باید چه کاری انجام بدیم یووی ای معمولا اون قسمتی از اشایی, اشایی خورشید هست که باعث برونزه شدن پوست میشه در لایه درم پوست لایه میانی اثر میذاره در واقع عمق نفوزش زیاد هست ولی تغییرات کنسریک رو به وجود نمیاره برای ما و بیشتر باعث اسکین ایجینگ پیری ز رو ایجاد میکنه بخشی که ما بیشتر ازش یووی بی هست که شدت تخریب بالایی داره ولی در سطح پوست در ناحیه اپیدرم اثر میذاره و در واقع اول باعث ایجاد آفتاب سوختگی میشه در نهایت میتونه باعث ایجاد کنسر بشه و قسمتی از اشعهی خورشید که برای ما مفید هست یعنی تنها در واقع مزیت اشعهی خورشید که تولید ویتامین D هست توسط UVB اتفاق میفته Uh, و این که یه سری از افراد خیلی ممکنه سوال بپرسن که وقتی ما از پشت شیشه آفتاب میگیریم آیا ویتامین دی تامین میشه یا نه من باید بگم که شیشه های معمولی به طور معمول طول موج زیر 320 نانومتر رو جذب میکنن بنابراین یو بی رو کامل جذب میکنن و بخشی از یو ای یعنی هیچ تأثیری برای تولید ویتامین دی نخواهد داشت و شیشه های دودی به طور کامل یو ای و یو بی رو جذب میکنن بنابراین توصیه میشه که اگر قراره برای تامین ویتامین آفتاب به مدت کم حداقل بین 10 تا 20 دقیقه تحت اکسپوژر آفتاب باشین و نه بیشتر که در واقع ویتامین دی تامین بشه توصیه سازمان غذا و دارو و همچنین آکادمی درماتولوژی امریکا برای حفاظت از پوست در برابر نور آفتاب دو تا راهکار اصلی هست که در واقع یک راهکار که اصلی ترین راهکار هست به این شکل هست که در واقع ما تماسی با اشایی آفتاب نداشته باشیم و پوشاندن سطح و موضع هست و راهکار بعدی استفاده از زده آفتاب ها اما اینکه حالا ما میخواییم زده آفتابی رو انتخاب بکنیم باید به چه نکاتی توجه بکنیم و اصلا مکانیسم اثر زده آفتاب به چه شکل سهدافتاب ها معمولا دو نوع فیلتر درشون گنجونده شده فیلتر های فیزیکی و فیلتر های شیمیایی فیلتر فیزیکی حاوی مواد معدنی هستند مثل اکسید روی دیتانوم دیکسساید که کاری که انجام میدن فقط باسه انعکاس اشعه خورشید میشن ولی بسیار بسیار قوی عمل میکنن و معمولا تو مارکتینگ دافتابهایی که فقط فیلتر فیزیکی داشته باشن طرفتاری ندارن به این دلیل که خیلی فرد رو سفید میکنن و سفید و چرپ هستند ولی با این حال محافظت بسیار بسیار خوبی دارند. فیلترهای های شیمیایی در واقع موادی هستند مثل سارسیلات ها سیینمات ها بنزوفون ها که باعث تبدیل موجه ماورای بنافش به مادون قرمز میشن در واقع نوری که ساته میشه انرژی ماوره بنفش ما تبدیل به حرارت میشه به مادون قرمز تبدیل میشه و زده آفتابایی که در در سال اخیر در واقع به مارکتینگ اومدن حاوی هر دو نوع فیلتر هستند و معموله سفید نمی و در واقع کارایی خوبی دارن یه فاکتوری هست به اسم سان پروتیکشن فاکتور یا SPF که همه در واقع بهش آشنا هستند میار سنجش قدرت ضد آفتاب هست و نشون میده که میزان حفاظت پوست در برابر نور خورشید به چه مقدار هست ولی نه معادل عددی که روی در واقع SPF می نویسند مثلا اگر SPF یک ض آفتاب سی هست به این معنی نیستش که سی درصد قدرت محافظت داره به طور کلی قدرت محافظت ضد آفتاب ها فارغ از اینکه SPFشون چقدر باشه بالای 90 درصد هست و SPF هایی که با هم متفاوته فقط روی اون ده در در واقع با هم تفاوت دارن بهترین SPFی که توصیه میشه شما برای زده آفتابی که میخواین بخرین بهش دقت کنی SPF 15 تا 30 هست هرچند که SPF های بالاتر هم وجود داره ولی SPF های بالاتر فقط در موارد خاص توصیه میشه موارد خاص مثل زمانی هستش که شما در واقع قرار بیش از دو ساعت تحت اکسپژه با آفتاب شدید بین ساعت 10 تا چهار بعد از ظهر هستین شناگر هستین یا قرار هست که اسکی انجام بدین یا اینکه حساسیت های پوستی دارین و به طور موقت در اون موارد خاص ما توصیه می که SPF های بالا 50 یا حتی 100 رو استفاده بکنین علت اینکه میگییم معمولا SPF همولتون 15 تا 30 باشه به این دلیل هست که زمانی که قراره ضد آفتابی پروتکشن بالاتر رو ایجاد بکنه مواد و فیلترهای شیمیایی که در آن استفاده میشه با دوز بیشتری در واقع در اون گنجونده میشه بیس کرم چارپ هست و فرد موصید لک و موصید آخن میکنه می اگر قرار باشه که طولانی مدت ازش استفاده بکنه. برای این زمان که میخواین کیرم زده رو برطرف کنی، اول حتما نگاه بکنین به SPF اون و مسئله بعدی هستش که حتما دقت بکنین که هر دو بخش UV-A و UV-B رو پوشش بده. معمولا روشون مینی بیشن Broad Spectrum یا UV-A UV-B Protection و یکی خیلی دقیق تر بخواین نگاه بکنین میتونن در اینگریدیانش به دیوکسی بنزون ها نگاه بکنین که حتما این ترکیبات در آنها وجود داشته باشه. مساله بعدی هست که کرمی رو انتخاب بکنین که مناسب با پوستتون باشه. پوست در واقع خشک، نرمال، چرب و یا مستعد آکنه و در مواردی هم که در واقع با آب سر و کار دارین از نوع واتر رزیستنت استفاده بکنین. نکته بعدی هست که ما چه موغز دافتا رو استفاده بکنیم و چه مقدار. توصیه میشه حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت قبل از اینکه در مرز آفتاب قرار بگیرین کرم ضد آفتاب رو به مقدار مناسب معمولاً به اندازه یک بند انگشت حرف فرد که حدود دو گرم کرم در واقع هست به شکلی که شما کامل قسمت صورت رو حتی تا حدی از گردن روی لب و روی گوش کامل پوشش بدین و معمولا ما تاکید می‌کنیم که ماساژ ندین شون این در واقع کرم فقط نقش پوشانندگی داره و نقش در واقع مغذی بودن رو نداره این تایمی که 20 دقیقه تا نیم ساعتی که قبل از برخورد با آفتاب تاکید می‌کنیم زمانی هستش که یه مقدار به کرم در واقع فرصتو میدیم که فیلترها جذب پوست و منطقه درم بشن و بتونن کار خودشونو به خوبی انجام بدن و اینکه آیا نیاز هست ما تجدید بکنیم زد رو یا نه اگر فردی در واقع امکانش رو نداره که تجدید بکنه مسئله ای نیست ولی اگر در واقع بخوایم بهتر و علمی تر برخورد کنیم با توجه به توضیحی که ما برای فیلترهای شیمیایی دادم هر دو ساعت یک بار بهتر ما تجدید بکنیم که فیلترهای شیمیایی که نقشو تبدیل اشای ماوراء بنفش و مادون قرمز رو دارن در واقع مصرف میشن و ما هر دو ساعت وقتی تجدید میکنیم در واقع به اونها کمک میکنیم که بهتر عمل بکنن اما اگه برای فردی تمال تجدید، امکان تجدید وجود نداره، فیلتر فیزیکی همچنان داره کار خودش رو انجام میده. از نظر زمان اکسپوشیر با اشای خورشید میزان یوویه ای و یوویه بی در طول مدت روز متفاوته. مقدار اشای یوویه بی از ساعت ده صبح تا 4 بعد از ضرب بیشترین مقدار هست و حد اکثر اشای در زمان ظهر هستش که میتابه. می و مقدار اشای یوویه ای معمولا در کل طول مدت روز ثابته. بنابراین، یه سه سوالی مطرح میشه که آیا در روزهای ابری لازم هست ما زده آفتاب استفاده کنیم؟ بله حتما هر زمانی که روز هست ما نیاز به استفاده از زده آفتاب داریم چرا که یوویه ای همچنان در واقع فعال هستش چه افرادی باید از زده آفتاب استفاده کنن بدون استثناء همه؟ اما در اطفال ما خیلی توصیه نمی کنیم در حالت عادی استفاده بشه به خاطر تحریک پذیری که در اثر موادی که در زه دافتاب دا هست ممکنه برایشون ایجاد بشه من که سن پایین معمولا احتمال و ریسک ابتلا به سرطان خیلی کم هست اما اگر قرار هستش که طفل بیش از دو ساعت در معرض آفتاب شدید قرار بگیریم مثل زمانی که برای شنا و یا اسکی در واقع تحت ایکسپورشل با آفتاب هست حتما باید استفاده بکنن و حتما هم توصیه میشه که از نوع مخصوص اطفال استفاده بشه چرا که فقط فیلتر فیزیکی رو در اون گنجونده شده و تحریک پذیر نیستش بنابراین در واقع حتما از نوع اطفال استفاده بکنیم بسیار سپاس گذار خانم دکتور به یکی از دوستان پاسخ بدیم. بفرمیش شما روی خط هستید در شما و خانون دکتر من یه سوال داشتم اولا که کسی که از آفتاب سرطان پوست می‌گیره میتونه که بگین که جنتیک هستش و خانوادم هم یا نه یک سوال همه سوال دیگم اینه که من قسمت لبه پایینم معمولا ایورستت لب من یه دونه یه دیره پوست میزنه شاید هفتشتر روز طول میکشه تمام پوست لب منو رو میکنه خیلی بجور و بعد این خون میفته مقدار خونی که خارج میشه خوب میشه آیا این ممکنه که چیز بدی باشه یا نمیدونم عادیه خیلی ممنون از تماسی که گرفتین من یه سوالی از شما دارم اگر امکانش هست میخوام بدونم که چند سالتون هست من 65 سالمه 65 سال و این زخمی که براتون ایجاد شده چه مدت هست که ایجاد شده الان شاید نه چه پنج ساله ولی گهگاهی این اتفاق میفته نه که حضوز هر ماه درسته ممنون من سوال دیگه ندارم میتونین از رادیو گوش بکنید ماشد کرد خیلیش میکنم آه. در رابطه با سال اولتون اینکه یه فردی در واقع مبتلا باشه و این اگر اشتباه نکنم منظورتون هستش که قابل سرایت هست یا نه سرطتان های پوستی معمولا قابل سرایت نیستن ولی به هر حال وقتی یه ضایعه ای با این وارنینگ سانی که من توضیح دادم ایجاد میشه در فردی از افراد خانواده و زمانی که بررسی میشه بایوپسی میشه و با به تشخیص قطعی میرسن به عنوان یک عامل مثبت تلقی میشه یعنی به هر حال حتی اگر ما در خانوادهمون هم به طور قطعی مشخص نباشه که فرد مبتلا هست به سرطان این احتمال و ریسک ابتلا برای افراد عادی هم وجود داره و زمانی که فامیلیال هیستوری مثبت میشه ما بیشتر توجه میکنیم و هر زایه ای که رفتار غیر طبیعی داره رو بیشتر بهش بها میدین و حتما به درماتالوجیس مراجعه میکنین که نمونه برداری بشه و مشخص بشه در رابطه با سوال دومتون بالای سن بالای 40 تا 45 سال هر زایعه ای برای ما مهم تلقی میشه و با توجه به اینکه الان چیزی رو که در واقع شما در رابطه با اون دارین کامپلیند میکنین زایعه هستش که به طور مزمن در طی چندین سال داره اتفاق میفته حتماً احتماله اینو نمیدیم که بدخیم باشه ولی پتانسیل بدخیمی رو میتونه داشته باشه و من توصیه میکنم که حتما به درماتولوژیست مراجعه بکنین و نمونه برداری انجام ضم بشه که به تشخیص قطعی برسید. بسیار سپاسگزارم. اگر یا بریم برگدیم. وقتی برای زندگی به آمریکا میایید، بهتره که فوراً برای دریافت گرین اقدام کنید. و وقتی برای تأمین مایحتاج روزانه‌تون به سبزی مارکت بیروید بهتره که با عضویت رایگان فوراً کارت سبز سبزی مارکت رو دریافت کنید و روی قیمت بسیاری از اجناس با پرچسب سبز کلی تخفیف بگیرید. مدیریت جدید سبزی مارکت امکانات بیشتری رو برای راحتی شما فراهم آورد قطع فکر ولی و پارکینگ مجانی رو هم کرده. از نان سنگک و بربری و پیتای تنوری داغ تا انواع میوه، آب میوه، سبزیجات تازه، گوشت، مرغ و ماهی تازه از راه رسیده. روزانه از بخش دلی و یه غذاهای توری آماده، کیک و خوشمزه و کیچن عالی سبزی مارکت استفاده کنید. و چهارشنبه‌ها حتما به سبزی مارکت سر بزنید چون اونجا فارمز مارکت. تلفن 812 745 13 13. نشانی 17 ونچور بولوارد بین خیابان‌های لویس و انسینا. همین هفته توجه شما را به برنامه ای از دکتر رامین تیانی از مراکز درمابر در مورد آخرین تکنیک زیبایی جلب می کنیم. 866-444-64-11 درمابر شعر جان چند تا قله کی سی برای کودکان مبتلا به سرطان مؤسسه مهگ توی خونم پر شده نمیدونم کجا ببرم دستت درد نکنه هر وقت قله پر شد کافیه به دفتر ایس با سی با شماره 9496799911 تلفن بزنی و آدرس تو بدی بعد یکی از داوطلبون ایس سی سی میاد دم در منزل یا محل کارت ها رو تحویل میگیره چند تا قله خالی هم برات میارن که هم تو خونه هم سر کارت بذاری هم به دوست و بدی میدونی همین پول خوردی که تو قول لایک میریزی میتونه جون یه بچه رو نجات بده همین پول خوردای قله 20 یا 30 دلار یا بیشتر شاید اینجا به نظر نیاد و پولی نباشه اما در محک همین مقدار کمک منترین هدیه دنیا یعنی سلامتی و طول عمر رو به کودکان مبتلا به سرطان هدیه میده دوباره تلفن رو بگو 9496799911 اطلاعات دقیق تر روی وبسایت icc-charity.org استودیو گاز 6:00 after the AM های دانش برنامه‌ای از ارجمندان و استادان و پژوهشگران ایرانی دوستان عزیز پای گفتار خانم دکتر سپیده شاکری هستیم که برای ما از سرطان های پوست و راه پیشگیریش گفتن و میریم به دوست بعدی بفرمید دوست عزیز Hello. بفرمید Hello. بفرم. Hello. سلام برشو um, به وقت ما یه سؤالی بشتم من um, یه پیماری به نام شوگر تو من تشخیص دادن بعد uh, من نیکم ریزش کردن گفتن آف نباید اصلا به هیچ اموان باشم با سمینم نظر شما چیه ؟ هست ممنون از تماستون؟ بیماری شوگرن در واقع بیماری اوتو ایمیون هست و حالا به هر حال تشخیص رو که برای شما گذاشتن معمولاً به همین شکل ما نه تنها برای افرادی که مبتلا به بیماری اتوایمیون هستند برای کلیه افراد با توجه به توزیادی که من دادم میزان برخورد با آفتاب رو محدود می‌کنیم و حتی نکاتی رو هم که من گفتم تاکید میکنیم که رایت بشه در رابطه با اون و مال شما که خب 100 درصد باید بیشتر رعایت بکنین چرا که مستعد فوتوسنسیتیویتی هستین و دور چره تحریکات پوستی میشین و اذیت میشین در انتهای سپاسگوز. دوست بادی بفرمایید؟ بفرمایید. سلام عرض می‌کنم قربان. سلام قربان. ببخشید کاری داشتم خدمت خانم دکتر من قبل از یعنی قبل از 2000 این بعد چشم راستم یه چراخ خشولو شده بود یعنی زهر شده بود. همی جوری امروز فردا و نمیدنم هرچی فکر میکنی و روغن ترموز و گلزهیلی و نفت بنابای زدیم خب نشد تا 2009 راتم عمل کردم 2009 عمل کردم اول خوب انجام نهدن تو بیمارستان بعدش حدود یک سال پیش رفتم دو دفعه عذیت هم کردم رفتم اونجا گفتم حاله دو دفعه این سرطان پوست برگشته زده پشت چشمه هست و باید چشمت در بیاریم پشتش آقا گفتیم خود من نمیخواد چشمون در بیاریم گفتن خود اگر چشمت در نهاریم ممکنه بزنه تو مغز گفتیم ما که مغز نداریم حالا بزنیم نظر میکنم والا اصلا همون درخونم تا همین دیگه گفتن شد چشمت میشه دیگه ولی چشمت در نمیره بعضشون گفتنم که یه دوایی میدیم میگه بعد دو ما به ما وزنگ زنگ بین یک یه قرصی واسه شده باش ما ببینن یه خوب میشه شده ما الان حدود تقریبا 6 هفت هست از این کپسول میخوریم اینا خودشون میگن یهو قیمته و خوب تقریبا خوب شده هر وقت میرم داروخانه میرم میگه که بخوچش میذاریاری ما بعد در میشینم او من چشام میبینه چه میگوین در میگه من Hvorfor er I en kommandør, <تصفيق> مرسی از تماسی که گرفتین البته با توجه به اینکه حالا خودتون دارین در واقع مطرح میکنین که تشخیص رو دادن به عنوان کنسر پوستی خب حتما باید پیگیری بکنین حالا اگر از نظر پزشکی که براتون تشخیص دادن راضی نیستین می‌تونین از همکارای دیگه کمک بگیرین دارویی که براتون تجویز کردن من نمیدونم چه دارویی هست ولی اخیراً داروی جدیدی به اسم کیترودا اومده برای درمان ملانوما که در در واقع یو دکتر ریباس روش کار میکنن و خیلی هم جواب خوبی داده با توجه به در واقع نظر پزشکتون باید فالو بشین در در واقع با اون زمانی که دارو رو بهتون میدن و فالوآپ بعدی میتونن بررسی بکنن که چقدر بیماری شما تحت کنترل در اومده با توجه به صحبتایی که من داشتم بله سرطان های بدخیم از جمله ملانوما و اسیسی قابلیت متاستاز رو دارن و میتونن به بافت های اطراف دست پیدا کنند. و من امیدوارم که شما در واقع پیگیری بکنین و سلامتیتون رو به دست بیاریم سپاس بسار دوست بعدی بفرمی گروه برای؟ بله سلام گروه ممنون از برنامه شما و حضور خانم دکتر من سالم این بود که من کمبود ویتامین د دارم ویتامین دی و علتش هم به خاطر این بود که تو هم با ورتیگو داشتم و دکتر تشخیص داد که اندازه بیتامین د رو نگرفتم، تشخیص بیتامین د پایینه و باید حتما آفتاب بگیرم. من توی مدت 5 از هر فرصت استفاده کردم، آفتاب گرفتم. برای متأسفانه مدتش طولانی بوده، مثلا نمی‌دونستم 30 دقیقه یا 45 دقیقه، سعی کردم تو آفتاب باشم و از کرم اینا استفاده نمی‌کنم، چون شنیدم اگه کرم استفاده کنم اون به اون بسراد نمیتونم اون مقداری که لازمه به پوست برسه برای ویتامین دیم بعد اینه که خواستم انا من باید هر چه چند وقتی دفعی این کار رو میکنم و برای چه مدت و از وقتی این کار کردم من اخیرا یه مقداری بعضی موقع احساس خارش دارم رو پوست من حس میکنم که ایری های برج قسمتی پوشت و دشرا بخارونم و همین خواستم میرم که باید چی کار کنم تو این محره آیا باید کرم استفاده کنم و برجی میگن فقط گردن و دست کافیه برجی ها میگن نباید تمام بدن در محرزت خورشید باشه نور خورشید باشه اگه ممکن راهنمایی بفرمایید. ممنون از تماستون، در رابطه با کم بوده ویتامین دی من در واقع این رو میتونم بگم که برای تأمین ویتامین دی فقط کافی هستش که سطحی معادل پشت دست های هر فرد به مدت 20 دقیقه در روز در معرض آفتاب قرار بگیره بدون اینکه استفاده کرده باشین از ضد آفتاب و یا کرمی و به مدت 20 دقیقه یعنی همین مقدار کافی 95 درصد ویتامین دی بدنتون تأمین میشه و لازم نیست که کل سطح بدن در تماس با آفتاب باشه و اما در تقویم اخیر یه مسئله‌ای هستش که فقط تامین ویتامین دی از طریق در واقع انرژی آفتاب نیست و مسلماً درصد‌های های بقی رو مواد غذایی و تغذیه مناسب کاور می‌کنه بنابراین شما اگر در اثر تماس با آفتاب دچار فوتوسنسیتیوتی شدین تایم گرفتن آفتابتون رو به مقدار محدود بکنیم و استفاده از های دارویی رو هم که بتونه ویتامین دی تنظیم بشه در توصیه میشه با این حال حتما با پزشکتون مشورت بکنی و حتما با آزمایش هایی که میدن بتونن روند در واقع تامین ویتامین دیتون رو دیتکت بکنن و بازم ممنون از تماستون من نرستم پیش از این جلسه با شما صحبت کنم خوام دکتر که منم شخصا مخالف نبودم با آفتاب یعنی صحبت قبلی شما رو کشینده بودم توجه می‌کردم بهش که فرض کنید دوبار در هفته در دقیقه بیس دقیقه مثلا باشده دست غیر بیره تازی این در روده سه سال پیش مسئله کمبود ویتامین دی بین مردم مطرح شد و یه دیگفتن های این گذافه گوییست یا قصد فروشی بیشتر ویتامین دی چه چه چه دانشگاه واشنگتون در سنت لوئیس که یک از بهترین دانشگاه ماست تحقیق خیلی گسترده کرد و پارسال محقق اصلی آمده اینجا یوسیله برای ما یک گراند رانز عالی داد و گفتن که درصد بسیاری از مردم کمبادی ویتامین دی دارن حالا داستان ویتامین دی که خاطرتون است این در انگلیس حدود ست سال پیش شروع شد که بچه ها اشکال دوستخونه داشتن به علیت کمبادی باید شروع کردن توی فراوردهای شیر گذاشتن سپلمن دادن حتی قرص تج، تجویز کردن و و و رفت تا اون حدی که پیش از مقدار لازم مردم شروع کردن ویتامین دی دریافت می تا اکثریت از این ملتوییتامین ورف میکنن و اون یه مقدار ویدی می رسونه و در بیشتر جواب آفتاب اکسپوز میشن و یه مقداری ازجا ساخته میشه. خوراکم در سری از جامعه خوب میخوره و ویتامید دو بهش میرس. این موقیقی که خلاصه تحقیق یکم دو ساله دانشوی واشنگتن رو برام خود پیامش این بود که بله ما کم بود ویت دو داریم آلو دیگه هوایی مقدار کمک میکنه مثلا سان اله ازش پرسیدیم لس‌آنجلس گفت درست در مرزی جایی هستیم که پایین ترش افتاب به ما میده بده ویتامین بالاترش نمیده و آلودگی هوا این رو باعث میشه که اون که ما دوست داریم از آفتاب ویتامینی نگیر ولی بسیاری از پزشکا الان معتقدن که نمیارزه نمی ارزش به ریسکش مثلا محصول همین آقای کلازج دادن درسته که به قول شما فوتوسنسیتیو دارن حساسیت ندارن این بهتره که پزشک تجویز درست. کنه و برنج میریم به دوست بعدی <تصفح> بفرمایید ازش علاقت نداشته بفرمایید من حساب داشتم می‌خواستم که این سکین تگ هست چه چیز به چیز باعث میشه که این سکین تگ زودتر بیاد ممنون از تماستون. اسکین تگ در واقعی سری زواید پوستی هستن که نه به حساب خال میان و نه به حساب زایات در واقع غیر خالی یعنی در واقع زم زوادی هستند که معمولا در اثر برخورد با آفتاب ایجاد میشن ولی باز هم عامل اصلی شناخته شده ای ندارن ما توصیه می با توجه به که تجهیزات خیلی خوبی در زمینه درماتولوژی به روی کار اومده و دیگه مثل قدیم نیست که اگه قرار بشه رو بردارن جای بخیه بمونه و یا اسکاری به جا بذاره توصیه میشه افرادی که اسکین تک زیاد دارند و یا در قسمت هایی هستش که هم کازمتیک و هم از نظر مساله دیگه برای فرد اذیت کننده هست و ممکنه دست بخوره و در واقع اسکین تک کنده بشه و مجدد زخم بشه که حتما اون زاییده برداشته بشه و در مواردی که سایزش بزرگ باشه یا تغییرات بدخیمی داشته باشه برای پاتولوژی فرستاده بشه در حالت عادی یک زائده خوشخیم هست و معمولا از نظر کازمتیک افراد عراقمند هستن که بردارن اونها رو و مورد خاصی هم نیست بسیار سپاسگزارم دکتر دکتور واقعا صحبت عالی بود مسائل پیچیده رو با بیان خوش و سعادتون گفتید ما با دوستان ایران تماس گرفتیم ولی نشد بیاریمشون روی خاطر ان شاءالله در جلسات آینده جان مرسی از کمکتون دوستان عزیز هفته عالی داشته باشیم قربان شما خواهش میتونم ممنون از حوصله تون خداحافظ مرزهای دانش برنامه ای از انجمن استادان و, و پژوهشگران ایرانی.